از افسان بار نو از گروه جوان و فرهنگ به نام خالق شب و ستاره سلام افسانه ها هنر مردمان هن و در بین مردم نفوذ و گسترش زیادی داشتند مردم خودشون افسانه ها رو پرداخته و بازگو کردن و گاهی حتی اونا رو تغییر داده و به باورها و سنتها و عقاید خودشون نزدیک کردن این هفته در برنامه هزار افسان افثانه ای رو از مردمان سرزمین سربستان براتون نقل میکنم به نام افسانه زبان حیوانات برگرفته از کتاب افسانههای های سربستان گردآوری استفانوویچ کراچیچ با ترجمه از مهین راتبور در زمانهای قدیم در سرزمین سربستان مردی زندگی میکرد که چوبانی داشت این چوپان سالهای سال با پاکی و درستی به اون خدمت کرده بود روزی از روزها که چوپان مثل هر روز مشغول چراندن گوسفندها بود از اون ور جنگل صدایی به گوشش رسید چوپان کنجکاف شده بود که بدون این صدا چیه نورین به اونور جنگل دوید وقتی به جنگل رسید دید که قسمتی از جنگل در حال سوختنه و در میون شعله های آتیش ماری به این طرف و اون طرف میخزه و راهی برای نجات خودش پیدا نمیکنه. کنه لحظه ایستاد و به این صحنه خیره موند در این موقع مار به زبون اومد و گفت ای چوپون محضر ازای خدا نجاتم بده چوپون؟ چوب دستیشو به طرف مار دراز کرد مار به اون پیچید و بعد خودشو به دست و گردن چوپون رسوند مرد که به شدت ترسیده بود با وحشت گفت آخ من چه بدبختم تو رو از آتیش نجات دادم و خودمو نابود کردم مار جواب داد نترس نترس من به تو آزاری نمیرسونم فقط منو پیش پدرم سلطان مارها ببر چوپان گفت نمیتونم. میبینی که من چپونم و نمیتونم گسفندم تنها بذارم. مار گفت. برای گوسفندات نگران و دلواپس نباش. برای اونا هیچ اتفاقی نمیفته. فقط عجله کن. چوپون در حالی که مار به گردنش پیچیده بود برافت. چپون رفت و رفت تا به قسمتی از جنگل رسید که در اونجا هزاران مار به این طرف و اون طرف میخزیدن کمی دورتر دروازه به چشمی خورد مار سوتی کشید و دروازه باز شد اون وقت مار به چوپان گفت خب دیگه رسیدیم اینجا دروازه قصر پدر منه وقتی اون بفهمی که تو منو نجات دادی به تو پیشنهاد میکنه که هر چه طلا و نخ بخوای بخوایی به تو بده اما تو قبول نکن و از اون بخواه کاری کنه که تو زبون حیواناتو بفهمی البته پدرم فورا این تقاضای تو رو قبول نمیکنه ولی بالاخره رازی میشه. شه اونا از دروازه گذشتن و وارد قصد شدن همین که چشم سلطان مارها به اونها افتاد اشک شادی از چشاش سرازیر شد و گفت کجا بودی پسرم چه اتفاقی برات افتاده بود پسر همه ماجرا رو برای پدرش تعریف کرد و گفت که این چوپان چطوری از میون های آتیش جون اونو نجات داده سلطان مارها از چوپان پرسید خب بگو ببینم در مقابل این خدمتی که به من و پسرم کردی از من چی میخوای چوپان جواب داد من به چیزی احتیاج ندارم فقط فقط سلطان مار کلام چوپان رو قط کرد و گفت فقط چی؟ بگو چوپان گفت فقط میخوام به من محبتی کنی و کاری کنی من زبون حیواناتو بفرمم پادشاه مارها با شنیدن این تغاظای چوپون غمی توی صورتش نمایان شد و گفت مم. نه جوون نه این توفه من برای تو خوشبختی نمیاره چون به روزی تو این راز رو به نفر دیگه میگی و گفتن همان و مردن همان. نه نه. بهتر یه چیزی دیگه از من بخوای نه. من حاضر نیستم تو رو به کام مرگ بفرستم جوون. چوپان گفت. اگه میخوای از من قهت رو کنی همینو که از تو خواستم به من بده. و اگه نمیخوای جونت به سلامت. من چیز دیگه ای چوپان چوپان اینو گفت و به طرف در خروجی قصر حرکت کرد سلطان مارها مکسی کرد و گفت صبر کن بیا اینجا حالا که دارت میخواد حتما زبون حیواناتو بفهمی من حرفی ندارم من فقط نگران خودت بودم حالا بیا جلوتر و دهنت رو باز کن بعد فوت محکمی توی دهن چوپون کرد و گفت آف جبو. تو دیگه زبون حیوانت رو میفهمی برو به امان خدا اما اگه جونت رو دوست داری مواظب باش که این راز رو به هیچ کس نگی چون گفتن همانا مردن همان چپون از دروازی قصب بیرون اومد و وارد جنگل شد جاله چوپون وارد جنگل شد حالا چه دنیای عجیبی داشت اون دیگه تموم صدای پرندگان جنگل و حیواناتو میفهمید. میفهمید. چوپون با خوشحالی به طرف چراگاه رفت و بلا فاصل شروع به شمردن گوسفنداش کرد چیزی از اونا کم نشده بود چوپون با خیال راحت زیر سایه درختی دراز کشید و توی رویاهاش فرو رفت در همین موقع دوتا تا که روی درخت نشسته بودن شروع کردن به حرف زدن و گفتن کاش این چوپون میدونست اونجایی که اون بری سیاه خوابیده زیر زمین چقدر طلا و نقره وجود داره چوپون اینو کشنید طاقت نیاورد و رفت سراغ اربابش و گفت من خواب دیدم که توی زمین شما مقداری طلا و نقره دفن شده ارباب خنده‌ای کرد و گفت <تصفيق> خواب خوابه کاش واقعیت داشت چوپون که نمیتونست به اربابش بگه خودش با گوشای خودش از کلاخا شنیدی که اونجا طلا و نقره دف شده اصرار کرد و روی خوابش پافشاری کرد و ارباب هم بالاخره پذیرفت و هر دو ای برداشتند و به همونجا رفتند وقتی زمینو کندن به دهانه سردابی رسیدن وارد سرداب شدند و دیدند آه چقدر صندوق پر از طلا و نقره اونجاست. است چوپان و اربابش با خوشحالی صندوقها رو توی ارابه گذاشتن و برگشتن منزل ارباب که مردی ثروتمند و در این حال اندازه مهربان بود به چوپون گفت پسر جان این گنج مال تو من به اون احتیاجی ندارم ولی تو با اون زمینی برای خودت بخر و توی اون کشاورزی کن خونه ای بساز و با دختر دلخواهت ازدواج کن و به خوشی زندگی کن چوپون به خاطر این محبت از ارباب تشکر کرد و همینطوری که ارباب گفته بود کشتزاری خرید خونه ساخت و ازدواج کرد چیزی نگذشت که با پشتکاری که چوپان داشت یکی از ثروتمندان اون منطقه شد حالا دیگه چند چوپان و گلههای گوسفند و, و گاو رو توی مزره همین چوپون چوپونهایی دیگه میچروندند تا اینکه یه روز قبل از اید چوپون که حالا دیگه خودش اربابی شده بود به زنش گفت زن مقداری نوشیدنی و خوراک تهیه کن تا خودم شخصا برای چوپونهامون ببرم بذار اونا هم روز اید خوش باشن زن ارباب هم فورا همه چیز رو تیه و آماده کرد و صبح روز بعد چوپان به راه افتاد اصب بود که به چراگاه رسید چوپان ها از دیدن اربابشون خوشحال شدن و به استقبالش رفتن ارباب که همون چوپان افسانی ما باشه رو کرد به چوپاناش و گفت دلم میخواد از حالا بخورید و بنوشید و خوش باشید اصلا فکر گله ها رو هم نکنید من خودم تمام شب موازه به اونو هستم چوپان ها با شرمندگی گفتن نه ارباب شما چرا ما خودمون به نوبت از گله ها موازهبت میکنیم ولی چوپان اصرار داشت که خودش اون شب از گله هاش کنه نیمههای یه شب بود که صدای زوزه گرگ ها و او یه سک ها بلند شد ها از ها پرسیدن اجازه میدین بیایم یه دلی از عزا در بیاریم اگه اجازه بدیم که به گله نزدیک بشیم به شما قول میدیم که از گوشت گوسفندها هم, هم به شما بدیم سهم شما پیش ما محفوظه ها جواب دادن ما مخالف نزدیک شدن شما به گله نیستیم آماده ایم که با شما همکاری کنیم در این موقع یکی از سکهای گله که سگ پیری بود و فقط دوتا دندون بیشتر نداشت با این کار مخالفت کرد و گفت می پر حرفی نکنین تا این دوتا دندون تو دهن منه اجازه نمیدم به گله اربابم آسیبی برسه ارباب که تمام صحبتهای سکها و گرکها رو شنید چیزی نگفت و فردای اون روز به چپونها دستور داد که تمام سکهای گله رو غیر از اون سگ پیر به بیابون برده و رها کنه چوپون ها که این دستور رو شنیدن با حسرت گفتن ارباب جسارت نباشه ولی حیف نیست این سگ‌ها رو از دست بدین اونها مواظب گله شما ارباب حرف چوپونا رو شنید و گفت هر چی که گفتم انجام بدین این ها به درد گله من نمیخورن بعد سوار بر اسب شد و یه مادیان هم با خودش برد ارباب از چوپونها جدا شد و به طرف خونش برافتاد سر راه سراغ همسرش رفت تا اونو که به دیدن مادرش رفته بود با خودش به خونه ببره ارباب به همراه همسرش سوار بر اسب در حال رفتن بودند که یهو مادیون ایستاد اسب عصب با عصبانیت بهش گفت چرا ایستادی بجنب مادیون جواب داد بله تو حق داری چون فقط ارباب رو میبری. اما من بیچاره باید زن ارباب و با ای که توی شکم داره ببرم ارباب این حرفو که شنید خنده‌ی بلندی کرد زن که عقب مونده بود به مادیون هی کرد و به شوهرش رسید و پرسید ای مرد چی شده به چی خندی؟ ارباب گفت هیچی هیچی همینجوری خندم گرفت اما زن دست بردار نبود که نبود و اصرار میکرد که بدون شوهرش چرا خندیده مرد میگفت زن عزیزم چرا اینقدر پافشاری میکنی؟ من که گفتم همینجوری خندیدم زن با تحجب گفت آخه مگه میشه آدم عاقل همینجوری بیخود اینقدر بخنده ها مرد هرچه خواست بیاد نشد که نشد و زن همچنان مصر بود که بدونه شوهرش به چی میخند مرد که دیگه داشت عصبانی میشد گفت این رو بدون اگه من علت خندمو بگم همون لحظه میمیرم تو دلت میخواد من از دست بدی زن که این حرف رو باور نکرده بود باز هم اصرار کرد و مرتب میگفت بگو بگو بگو چرا خندیدی؟ مرد که دید فایده ای نداره به زنش گفت باشه بهت میگم فقط اجازه بده به خونه برسیم اون وقت علت خندمو میگم وقتی به خونه رسید دستور داد تا تابوتی براش ساختن و اونو جلوی منزلش گذاشتن مرد به زنش گفت باشه حالا من توی این تابوت میخوابم و بعد برای تو علت خندیدنمو میگم ولی بازم میگم اگه علتشو برای تو بگم فوراً میمیرم زن سکوت کرد و فقط به این فکر میکرد که علت خندی شوهرشو بفهمه مرد توی تابوت خوابید و برای آخرین بار نگاهی به دور و برش انداخته. در این موقع سگ پیر نفس زنان از راه رسید بالای سر اربابش نشست و گریه رو سر داد. ارباب که اینو دید به زنش گفت. یک کمی غذا به این سگ بده. زن از آشپزخونه غذا آورد و جلوی سگ گذاشت اما سگ پیر حتی نگاهی هم به اون نکرد و همچنان گریه میکرد. در این موقع خروسی از حیات جلو پرید و شروع کرد به زدن به غذای سگ پیر سگ با خشم اون نگاهی کرد و گفت ای خروس شکمو تو فقط به فکر خوردنی مگه نمیبینی اربابمون خودشو برای مرگ حاضر کرده خروس جواب داد به جهنم بذار بمیره یه احمق کمتر اربابی که از عهده زنش پرده به چه دردی میخوره اون داره به خاطر زنش جونش رو هم از دست میده عرباب بی دست و پای ما مرد همین که این سرزنش رو از زبان خروز شنید از توی تابوت بیرون اومد و چوبی به دست گرفت و گفت ای زن بی وفا من میخواستم بدونم که منو چقدر دوست داری حالا که میبینم کنجکاوی تو به قدر یکی حاضری من بمیرم تا راز خندیدنم و بدونی پس یا دست از پرسش بردار یا سرکارت با این چوبه امیدوارم منو مجبور کنی که دست بروت بلند کنم زن ساکت شد و دیگه هیچ وقت در این بار از شوهرش چیزی نپرسید. افسانه زبان حیوانات و از مردمان سرزمین سربستان براتون نقل کردم. از کتاب افسانه‌های سربستان گردآوری دوک استفانوویچ کراچیچ ترجمه مهین راتپور. افسانه‌ها تو دیترین هنرند. بیان مسائل مردم در قالبی جذاب، سرگرم کننده و ساده یکی از ویژگی‌ها و دلایل فراگیر شدن افسانه‌ها هستند. در افسانه‌ها جنبه‌های ارزشمند سنتی و پسزمین های فرهنگی و روانشناسی مردمان سرزمین های مختلف به چشم میخوره هزار افسان کار مشترکی بوده از نویسنده و سردبیر زینت سالپور ویراستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی صدابردار هدیه کار. کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدرود